من دولت تعیین من تو دهن این دولت من دولت تعیین من شاه مری زاحوال سرانجام در سال 1324 هجری قمری برابر با 1285 شمسی فرمان مشروطیت را امضا کرد و چند ماه بعد درگذشت همان عوامل داخلی و خارجی که آغازگر مشروط شد اکنون به صورت صدی صد در می آمد در برابر آن محمد علی میرزا ولی اهد جسور که برای سلطنت بر نظامی استبدادی بار آمده بود و با مشروطه همدلی نداشت شاه شد در یکی از همان روزها سید جمال الدین با پسرش سید محمد علی جمالزاده به دیدن شاه رفتند وقتی که محمد علی شاه پادشاه شد، فرستاد پیش پدر من که تو پراموش کردی که دو دفعه آمدی به تبریز من بلیت بودم، من به تو محبت کردم، ولی حالا که شاه شدم و حالا که تو هم باعث مشهور مشروطیت شده ای، هنوز به ملاقات من نیامده ای. یک شب بیا به نیاوران شام به هم بخوریم با هم همجه صحبت بکنیم البته پدر من میترسید بره به نیاوران. با دوستانش مشروط طرف های بزرگ مشورت کرد اونها گفتن که قبول بکن مهمانی را اما این پسرت رو هم با خودت ببر او وقت من سیزده چارده ساله بودم فکر میکردن که جورت نمیکنه که پسر یک منم امام سرم بود مرا بکوشه ما رفتیم به نیاوران وارد شدیم مرا نشوندن که اتاقی برام شیرنی رو بردن, چای وردن، پدرم رو بردن پیش محمد علی شا. بعد از چندی اومدن که علا خبردار شده مرا را هم ورداشتن بردن توی اون تالاری که پدرم با محمد بود محمد اومد به طرف من من تظیم کردم بعد به من گفت اسم چیه؟ گفتم ممدلی گفت سد مدرسه میری؟ گفتم بله گفت که فرانس یاد میگیری؟ گفتم تازه شروع کردم گفت که لیور لیزه وو که به فراسه من فهمیدم یعنی چه کتابه میخونی ولی قبل از اینکه من جواب بدم من رو کرد و رفت پیش پدرم پدرم هم به من اشاره کرد که برو همونجا بنشین تا من بیا من رفتم خیال میکردم بعد به ما شام داد و بنابرای بود اونجا بمانیم ولی پدرم به حال برفروخته آمد که نه باید برگردیم به تهران معلوم شد حرفشون به همینکه نگرفته بود محمد علی شا کرده بود سوار همون کالسکه سلطنتی شدیم که برگردیم تو اون تاریکی به تهران این کالسکه برگشت لابد به امری محمد علی شا. من افتادم دور پدرم پاش رفت زیر چرخ کالسکه پاش تا آخر عمر پاش شکسته بود بدزبانی محمد علی شاه با سید جمال الدین تنها گوشه ای از مخالفت شاه با مشروط خواهان بود. محمد علی شاه حتی نمایندگان مجلس را به مراسم تاجگذاری خود دعوت نکرد. اما مجلسیان وادارش کردند تا به قانون اساسی سوگند وفاداری یاد کند. با تصویب قانون اساسی و متمم آن کار اولین مجلس شورای ملی ایران آغاز شده بود. به گفته دکتر همان آتق، این مجلس نماینده همه افکار بود، مجلس اول یکی از آزاد ترین و یکی از مترقی ترین مجلس هایی بود که ما دستیگ تاریخ ایران داشتیم و مهم بود برای اینکه افکار مختلف کنار هم دیگه نشستن و اقشار مختلف یعنی روحانی در کنار انصر چپ انصر چپ در کنار ها مشروطها انصر ها در کنار حتی انصر استبداد طلب کنار هم دیگه نشستن و وقتی ما صورت مزاکرات مجلس رو میخونیم میبینیم که در هر حال هر کسی عقیده خودشو و هدف خودشو به اون جوری که فکر می‌کرد در میان میگذاشد در یک چنین جوی تعریف آزادی و عدالت از اهم مباحث مجلس بود روشنفکران و متجددین که از دموقراسی های اروپایی الهام می‌گرفتند بیشتر بر آزادی تکمی کردند و روحانیون و سنتگرایان بر ادالت اما به گفته احسان نراقی در خود مجلس عدالت بیشتر هوادار داشت در اونجا به خاطر اون سابقه دینی و اجتماعی ایران جریان عدالت و قانون مهم بود نه آزادی و آزادی فردی معنی که در فرنگستون مستلق هست. به این جهت اون جریان همچنان پیش می‌رفت و اون بود که مهم بود اون بود که فائق بود بر تمام افکار مجلس هم خب طبیعتاً متوجه همین مبانی بود محدود کردن حكام متنفذین جلوگیری از اون امتیازات بیش از حدی که داشتن اینا بود که مجلس رو در درجه اول به حرکت وامدادش بیش از مفهوم آزادی که در مغرب زمین مطرح بود مهمترین نشانه اختلاف نظر شاید همین بود که چه نامی باید بر گذاشت متشرعین خواهان مشروعه بودند و متجددین خواهان مشروطه وقتی که ایران مشروطه شد نمیدونستند چه اسمی به این مشروطیت بدن بعدها در ایران آخوندها گفتند که کلمه مشروعه بذاریم بعدجا گفتند گفتن نه نه و نو و اینا و خیلی طول کشید گفتند که میذاریم مشروطه مشروعه اما در مجلس اول از جمله بقال ها، یک نفر بقال را وچیل خودشون کرده بودن به مجلس پرسند این بقال در مجلس در بلند میشه میگه ای بابا ما اسم این انگرابون را گذسته این مشروطه بدریم همون مشروطه چه لزومی داره که مشروطه را به بش چسبانیم اکثریت با این مرد همراه میشن و مشروطه باقی موند مثل خود قانون اساسی و مشروطه آداب مجلسداری و آین مجلس نشینی هم برای نمایندگان تازگی داشت و به گفته محمد علی جمالزاده با آدات روز سازگار نشده بود من خودم یادم میاد که پدرم مرا میفرستد برو ببین مجلس چطور کار میکنه من میرفتم دیدم در یک تالار خیلی بزرگی با روی زمین نشسته بودند و صحبت کردند. پدرم توی احادیث خونده بود که امام حسین روز آشورا وقتی خواست با همراهان خودش صحبت بداره فقام و وقاله یعنی برپا خواست و صحبت داشت همین را یه مقاله کرد در روزنامه سور استرافیل چاپ شد و از به بعد کم کم در مجلس صندلی گذاشتند و, و بکراب روی سندلی نشستند تنها ایستادن یا نشستن بر سندلی تازه نبود مطبوعات آزاد، تشکیل احزاب، توجه به قانون و میل به اصلاح و تحول روحیه پرشوری در مردم پدید آورده بود اما محمد علی شاه مجلس متی میخواست مخصوصا که در فکر گرفتن قرضه خارجی بود و مجلس مخالفت می‌ورزید همان سال دولت‌های روس و انگلیس قراردادی بستند و شمال ایران را منطقه نفوذ روس جنوب را منطقه نفوذ انگلیس و مرکز را بیطرف اعلام کردند این قرارداد و نیز اختلافات داخلی به گفته احسان نراقی مشروط خواهان را تضعیف کرد اول از همه اتفاق و اتحاد روس و انگلیس ازارن به بلافاصله با هم توافق کردند و روسها ها توانستند از اون اون ضعف فطوری که در اثر جنگ پیدا شده بود با نزدیکی با انگلیس جبران کردند و دو مرتبه به کمک مرتجعین و دربار قاجاریه افتادن به جون مردم دو مرتبه جلوگیری کردن از پیش برده هدفهای هدف های و خب در داخله و نیروهای اعتدالی و ارتجاعی و نمیدونم راست و چپ و اینا اینا تفرق انداخت شاید یکی از عواملی که کمک کرد به خارجی ها برای سرکوب کردن مشروط خوان همین اختلافات داخلی بود که به این صورت در میان مشروط خان و آزادی خان و مجلسی بروز کرد محمد علی شاه برای آن که با دولتی مقتدر رویاروی مجلس به علی اصغرخان اتابک صدر اعظم مستبد پدران خود را دوباره به کار گمارد. مجلسیان با اتابک بنای مخالفت گذاردند. اتابک به دست طرفداران مشروطه به قتل رسید و چند ماه بعد به خود محمد علی شاه سوی قصد شد. همون بمب به کالسکی ممدلی شاه یه عمل تندی بود که تحریک کرد ارتجاع و هار کرد ارتجا رو. همون بمبی که انداختن به کالسکی ممدلی شاه مونجا شد به حمله به مجلس و رفتار محمد رضا شاه باقیشاه به دستور محمد علی شاه فرمانده قزاقان روس مجلس را به توپ بست و جمعی از آزادی خواهان کشته شدند و مجلس اول تعطیل شد اسم اون موقع را ما گذاشتیم استبداد صغیر ولی مردم ایران به خیالت آمدند آذربایجانی ها بخدارها قشونی از گیلان آمد قشون از بختریه ها آمدن محمد علی شکست خورد از سلطنت مخلوق شد رفت در سفارت روس بس نشست و سفارت روس رفت به روسیه دیگه به ایران برنگشت یک قشونی فیلساد به ایران با یکی از سامنصبهای خودش اون قشون را ایرانی ها شکست دادند و ممدلیش در خارج از ایران مرد. با شکست محمد علی شاه مشروط خواهان به تصفیه حساب با طرفداران استبداد پرداختند شاید مهمترین قربانی شیخ فضلالله نوری بود شیخ چون نیات مشروط خواهان را خلاف شر میدید به جرگه مستبدان پیوسته بود شیخ فضل الله که او هم از علمای بزرگ ایران بود او از اول مگن مشروط طرف بود ولی بعد کم کمک جدا شده بود از مشروطیت. همین شیخ فضلالله با یکی از علمای دیگه پدر سید زیاددین معروف سید علی یزدی رفتن توی میدان توپخانه در تهران دور توبها مردم سروپا و فقید و فقور به زور دو و سقران اونها جمع می شدن. و فش میدادند مرده باد مشروطهیت زنده باد محمد علی شا و حتی یک نفر را هم به دار کشیدند نظر خیاتی رو که فهمید مشروط طلب ولی اونها هم نتمونستن پیش ببرن و حتی پسرش داشت پسرش بزرگ بود پسرش از قضا مشروط طلب بود و وقتی که شیخ فضل محکوم به قتل دادن به دار معروف همین پسرش پایدار حاضر بوده و خوشحالی میکرده. اعدام شیخ فضل الله نه تنها به جنگ میان مشروط خواهان و استبداد طالبان پایان نداد که خود آغاز شکافی عمیقتر میان دو نیروی تجدد و مذهب شد به گفته هماناتق شکست محمد علی شاه نیز به دشواری‌های مشروطه خواهان پایان نبخشید پایان کار شیخ فضل الله به جنگ مشروطه و مشروع پایان نداد فرزند جوان محمدعلی شاه احمد میرزا و نایب و سلطنه هم ناتوانتر از اون بودند که پاستار مشروطه بشن و مجلس هم تر از اون بود که با مداخلات روس و انگلیس بتونه مقابله بکنه ولی با این حال دولت ایران تصریم گرفت برای اینکه پای روس و انگلیس رو اندک از ایران بیرون بکشه به امریکا رو جو بکنه یعنی به کشور سوم و به یک کشور بیطرفتر و به این ترتیب بود که شسته رو به ایران آوردم برای تنظیم امور اداره ایران و این هیئت صادقانه در ایران کار کردم و این اول با مخالفت و دشمنی روس ها روبرو شد که التیماطم به ایران دادم و خواستار اخراج شوستر از ایران شدم. دولت ایران التیماطم روسیه را پذیرفت و مورگان شوستر که ماندنش در ایران برای مردم مظهر استقلال شده بود از کشور اخراج شد. پس از هفت سال شور انقلابی بار دیگر مجلس شورای ملی ایران تعتیل و کشور به انقیاد کامل روس و انگلیس درآمد و این مظهر شکست مشروط شد. شکست مشروطیت چند علت داشت. روشنفکران ایران خواستند که مدنیت غربی رو در ایران پیاده کنند و دموکراسی غربی رو در ایران پیاده بکنن بدون اینکه شناختی از ماهیت و سرشت این دموکراسی داشته باشن به نظر من بزرگترین شکست مشروطیت این بود یعنی مسیری که در اروپا طی شده بود تا این دموکراسی مستقر بشه از قرن هجده به بعد اینو اصلا اینها نه تنها بهش وارد نبودن بلکه نادیده گرفتن به طوری که گزارشکرهای فرانسوی و انگلیسی میخندیدند که فرض کنید که مثلا افرادی مثل شیخ سلیم یا نظیر اون در آزرباجان خودشون رو میرابو اسم داشتن دومین علت شکست مشروطیت عبارت بود از اینکه حتی مشروط خواهان در ولایات مختلف خواستهای همسان نداشتند یعنی خواستهای مردم آزربایجان درست مغایر خواستهای تهران بود یا خواستهایی که در اصفهان بود یا همینطور در گرجند در خراسان شعورها و خواستها اینها با همدیگه همگنی نداشتن این دومین بود سومین عامل شکست مشروطیت دخالت روس و انگلیس بود پیمان 1907 دولت انگلیس و روس بود که به روس ها اجازه اشغال شمال میداد و به انگلیس ها اجازه دخالت در جنوب و, و روس ها که در همان 1906 مجلس خودشونو بسته بودن این مقایر هر نوع حکومت قانونی در ایران بودن و از استبداد دفاع میکردن سرسختانه چهارمین علت جنگ مشروعه و مشروطه بود یعنی استبداد و آزادی خواهم بود که دولت های خارجی تونستن از نیروی استبداد حد اکثر استفاده رو بکنن به ویژه در آذربایجان وقتی که قشون روز به آذربایجان حمله میکنه کنه قوای سرکوبش رو خود استبدادنیان ایران تشکیل می ده مشروطه شکست خورد اما آنگونه که دکتر سیف پور فاطمی مورخ و نماینده پیشین مجلس نقل می کند نتایج اینی هم به بار آورد. بهترین جواب راجب به این موضوع را مرقوم مدرس به پادشاه عثمانی در قسطنطنیه داد. وقتی که از او سؤال میکند سلطان محمد که فرق حکومت مشروطه امروز شما با قبل از مشروطه چه چیز است؟ مدرس در جواب میگوید که قبل از حکومت مشروطه یک نفر به نام پادشاه قدرتی داشت که بر جان و مال مردم مسلط بود و هرچی میخواست انجام بدد بعد از مشروطه در دو سه دوره مجلس که ما داشتیم مجلس که نماینده مردم بود توانست که جلوه قدرت افراد را بگیرد و در وحله دوم مدرس گفت که ما در ظرف این سیزده سال یا مدت مشروطه توانستیم رجالی تربیت بکنیم که این رجال برای ما بزرگترین ذخیره مملکت هستند و با تمام مشکلاتی که داشتیم و گرفتار جنگ بین المردی بودیم و اشغال شدیم از طرف انگلیسها ها و از طرف روسها ها یک وجب از خاک کشور را از دست ندادیم و گذشته از نتایج اینی به گفته احسان نراغی خاطره آزادی و تجربه مبارزاتی مشروطه فراموش نشدنی بود. در کشور ایران بالاخره برای اولین بار قانون یه معنای گرفت برای اینکه واقعا با حکومت سلاتین شما وقتی میخونه زندگی سلاتین و قدرت های سلاتین مفهوم نرشته تا قبل از مشروط قانون در کشور ما همین توجه به قانون توجه به اینی که حکومت و قدرت محدود بار باشه هم مشروط بار باشه نامحدود نیست و اینکه افرادی حقوقی دارن این یقینا چندین نصر رو بالاخره تحت تأثیر قرار داده منتها چون همیشه تلخ بوده یعنی چیزی ازش حادث نشده نتیجه بوده دست نمیده اونجور که باید برای مردم یک امر محکم مسلمی نیست ولی خاطرش باقیه که کوشش برای استقرار قانون کوشش برای جلوگیری از تجاوز به حقوق مردم این خیلی مهمه حالا نشده به هدف نرسیدن مردم آزادی خواه این تلاش و این هیجان و این جریان فکری بر رضبنده که از بسیار شیرین و شورنگیز تاریخ معاصر ایرانه Quand on veut créer son entreprise, on est vite perdu quand on entend. Gabi, dépôt de capital, statut, numéro Siret. De quoi bien gâcher vos soirées. Rassurez-vous, Conto est là pour vous aider à y voir plus clair. Avec Conto, gérez facilement et rapidement les étapes de la création de votre entreprise. Et tout ça, 100% en ligne. Rédigez vos statuts, déposez votre capital, ouvrez votre compte pro et démarrez votre activité en toute simplicité. Rendez-vous sur compto.com pour créer votre entreprise.